این آیاتی که تلاوت کردن به نظر من آیات جالب و مهم میست. یک نکته در این آیات وجود دارد که اونجا حضرت موسی رو در آغاز ولادت مادر میاندازه در آب. و اوحینا الى موسى، ام موسا ان القهیه ان اردقیه و القهیه فليم ف خفت عليه، ف في اليم انا را دوه علیه و من المرسلين، دو تا یک وعده وعده برگردوندن اوست یک وعده وعده جاعلوه من المرسلین است یعنی اون وعده عمومی که به بنی اسرائیل داده شده بود که بنی اسرائیل منتظر بودن که منجی بیاد این منجی از طرف خداست و خواهد آمد و بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات خواهد داد. خدای متعال در وحی به مادر موسی این وعده دوم را هم داد. من المرسلین یعنی این رو ما میفرستیم از طرف خودمون. این رو همون مرسلی قرار میدهیم که بناس اون وعده بزرگ رو اون آرزوی بزرگ رو انجام بدهد. این دوتا وعده رو خدای متعال داد. یک وعده خب وعده نقد و نزدیک بود و او اناراد دوه الیک بود. در آیات بعدی که حالا اون آیات رو آقای سبز علی نخوند متعذفانه می که فرددناه و الا قومه که تقرع عینها ولا تحزنه ولی تعلم ان الله حق اینی که ما بچه رو به مادر برگردوندیم خب بله ها دارد ولا تهزنه دارد دلش خوش شد دلش آرام گرفت چشمش روشن شد اما اثر دیگر این برگردوندن این بود که ولید ان الله حق بدانه که این وعده‌ای که ما دادیم قط تیم رو میفرستیم کسی که بنا از استزعاف خارج کند جامعه بنی اسرائیل را در مصر خواهیم فرستاد بدانه که این وعده وعده درست است دلش مطمئن بشه و خاطر جمع بشه یعنی یک وعده کوچک تحقق پیدا کند تحقق می‌یابد از سوی پروردگار برای اینکه هر انسان اهل تدبری از تحقق این وعده کوچک اطمینان پیدا کند که اون وعده بزرگ تحقق پیدا خواهد کرد اونجایی که از موفقیت ها در طول تاریخ برای بشریت از طریق دین حاصل شده همون وعده های کوچکه از جمله جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی میگاسم این وعده هاست خدا متعال وعده داده بود که اگر مبارزه کنید اگر صبر کنید اگر به خدای متعال توکل کنید در جایی که گمانش را نمیبرید و امیدش رو ندارید، به شما قدرت خواهیم داد همین اتفاق افتاد ملت ایران مبارزه کرد صبر کرد ایستاد فداکاری کرد از دادن جان دریغ نکرد اتفاقی افتاد که هیچ کس نمیکرد. نمی کرد. کی خیال میکرد در این منطقه بسیار حساس در این کشور بسیار مهم در مقابله با اون رژیم بشدت حمایت شونده از سوی قدرت های بین المللی یک حکومتی به وجود بیاد یک انقلابی به پیروزی برسه اون هم بر اساس دین بر اساس فقه بر اساس شریعت این تزوری میگه هیچکس اگر کسی بگه من میدونستم اینجوری میشه مگر از طرق قیبی کسی فهمیده باشه اما بحاسبات با مطلقا این رو نشان نمیداد اما این اتفاق افتاد فرددناه الى امه که تقر عینوها ولا تهزن وله تعلم انه بعد الله حقون بدانیم اون وعده اصلی اون کار بزرگ اون هم اتفاق خواهد افتاد این یک نمونه ای از اون چیزی بود که اتفاق خواهد افتاد باید منتظر بود